بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة التجارة باب زكاة التجارة وإذا اشترى عربا للتجارة فحال حوله ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته مئة درهم إن اشتراه بورق أو إشرين مثقالا إن اشتراه بذهب مجل زمان كخريد کاله های رو برای تجارت کردن فرق نمیکنه. هر هرچی بود موبایل بود هرچی بود و حال برش رد شد در اون کالاها ها زکات هست زمانی که قیمت و ارزش اون کالاها ها برسه به دویست درهم اگر اون کاله ها رو با درهم خریده بود با نقره خریده بود پولای نقرهی یا قیمت اون کاله ها رسید به بیس منسقال اگر اون کاله ها رو با چی خریده بود با تلا خریده بود با دینار خریده بود خب البته الان زمان خودمون ما دیگه این چیزو تو حداقل کشور خودمون نداریم ما با تومان میخریم ولی اگر مثلا به عنوان مثال ما دوتا پول داشتیم مثلا هم روپیه رایج بود مثلا میگم ها هم تومان وإن موقئ اگر با تومان خریده بود طبق تومان و اگر به شکل فان نقص عند الحول النصاب فلا زكاه فيه اگر كم شدند انغام حول از نصاب یعنی به نصاب نرسید موقعی حول رسید بس زکاتی درشون نیست و اذا اشترى بعرض للغنيه ارضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد من دراهم أو دنانير من دراهم أو دنانير وكان أول حوله من حين ملك يا من حين ملك أرزة التجارة من زمانك خريت بكارل هاي كملك يعني گذاشته بود برای خودش باشون تجارت نمی کرد. اگر زمانی که خرید با کالاهایی هایی که مال قونیه بودند برای خود گذاشته بود برای تجارت نبودند کاله رو برای تجارت آقا با تلوزون شخصیش برای یک کاله شخصیش اومد کالای تجاری خرید میگه قیمت میگذاره اون رو هنگامه خب اینجا دیگه با پول نخریده که ما بدونیم با کدوم پول قیمت میگی قیمت میگذاره این کالا تجاری و هنگام رسیدن حال با نقد غالب بلد همون پولی که رایج تر بود غالب بود تو, من تو شهر تو منطقه شون من در ما او دنانیر حالا چی درهم غالب تر بود؟ چه دینار و کان اول حولیهی ملحینه ملک عراض تجاری خب ابتدای حال شو از چه زمان حساب کنه؟ از اون زمانی که اون کالای داشته کالای قبلی شخصی شو یعنی از اون زمانی که کالای تجاری رو خریده میگه اول حالش از همون زمانی که مالک کالای تجاری شده مثلا تراکتر شخصی شو رفته داده به پنجهت دا موبال مثلا میکیم از اون روزی که موبالای رو مالک شده حالش چی میشه؟ حساب میشه وكذلك لو اشتراه بأقل من مئة درهم ورقا أو أقل من عشرين دينارا دينارا ذهب كان أول حوله من حين يا حين ملك العرس مهما تنين زمانك خرید ان کالهارو به بكم ترز دویست درهم نقره یا بكم کم ترز بیست دینار اول حولش از زمانی شروع میشه که اون کالاهارو ها رو خریده مثلا رفته با نزده مسقال ده تا مثلا موبایل خریده خوب اینجا دیگه حالش از زمانی شروع میشه که اینا رو خریده موبایل ها رو شکر کرده ولو کان الثمن من ذهب او ورق کان اول حولهی من حیثو ملک ثمنه میگه اگر ثمن از ذهب بود یا از ورق بود نغدی که داده بود ورق طلا بود یا نقره بود اول حولش از چه زمانه اینجا؟ اینجا از اون زمانیه که مالک ثمن بوده مالکه دینارو درهم بوده اینجا دیگه از اون زمانی نیست که مالکه کالا بوده بلکه از اون مالکه سمن بوده از اون موقع حالش رو شروع میکنه و اید اشتره عربا بی دراهم فباعه بدنانیر، او قوامه بی دراهم و زکاه میگه زمان که خرید کالاهی رو به با درهم ولی فروخت اونها رو به دینار به دینار قیمت گزاریشون میکنه با اون چیزی که رو خریده که درهمه و زکاتشونو بده و لا ب عارض للتجاره بنا حول الارض الارضی الثانی على حول العرض الاول خب اگر خریده بود کالاهای های تجاری رو با کالاهای های تجاری شخص ابتدا خریده لبتاب هایی رو برای تجارت کردن بعدا این لبتاب ها رو داد و موبایل خرید بازم برای تجارت اینجا چیکار میکنه اینجا حول از چه زمان شروع میکنه میگه بنا حول الأرض الثاني على الحول الأراضي العوال حول كالهي دوثمو شرومي كونه بحر حول كالهي عفل دي بحل دي إدامة همون تجارة عفلة إدامة من تجارة ولو كان معه أرز للتجارة فنوى أن يكون للقونية صار للقونية وسقطت أنه الزكاة مثلا ديك در بحث أروز التجاري هس هناك مجيء أغرقو روز تجاری داشت و نیت کرد که اینا رو برای قنیه بکنه دیگه اینا رو نفروشه برای خودش نگه داره اینا دیگه برای قرنیه میگردند و زکات از چون؟ چون مسائل شخصی زکات مسائلی که برای مصرف شخصی میگیره و برای تجارت نمیگیره زکات نداره ولو لو کان معه اراد للقنیتی فنوى ان يكون للتجارتی لم تجب زکات و فیه حتی یتجربی بر روزی برای قنیه داشت نیت کرد که با اونا چکار بکنه تجارت بکنه زکات درشون واجب نمیشه مگر زمانی که بیاد عملا تجارت رو باشون چکنه خب ولی در مورد باب زکات اروز تجاری اختلافی وجود داره جمهور میگن اروز تجاری زکات دارند امام ابن حزم رحمت الله علیه میگه نداره از علماء مآصر همشه خلبانی بس هم و بسیاری های دیگر تقریبا البته رویه شون مثلا نسگره هستند تا بیان به ایلال و احداف النصوص و مقاصد بینگران موتقلاً که نداره مثلا یه دکانی شخصی داره 20 شخص میلیارد هم داخلش هست میگه این زکات نداره ولی پیرو که آقای یاسین که چلتا باز داره زکات با حالی که الان عرف زندگی دنیا هم عوض شده الان مثلا با چلتا گوسفند، طرف با سی سال کار بکنه تا خوناه امروز زندگی همش عوض شده کلن امکانات روز عوض شده خب اون که تا باز داره خب اون روز شکی نیست ناست دیگه ولی این که مثلا این آقا یه شرکت داره پنج هزار مثلا آیفون داره که هر آیفونی مثلا قیمتش 5000 همیلون تمنه به قول شیخ قرزاوی کتاب دو جلدی داره در مورد زکات میگه اینجوری اگر بشه پولدارای دوبه و قاهره از زکات چی بیشند معاف میشند خب ولی البته هر دو طرف ادل خاص خودشونو ذکر میکنند ولی اگر به هدف زکات که مالی که از اغنیا گرفته میشه و به فقراداده میشه انسان نگاه بکنه یا به اون نس امومی قرآن که یا ایوالذین آمنو انفق من طیبات ما کسبتم انفق من طیبات ما کسبون چه کسب کردین؟ به این نتیجه میرسه که واقعا هدف راحت بشه چونی نباشه که صاحب شرکت آیفون از زکات در امان باشد و پیروک آقای یاسین که چرت داره ازش زکات گرفته بشه خب بابو من و علیه الزکات بابی افرادی که زکات برشون واجبه افراد برشون بر اونا واجب زکات بدن منظور تجیب على كل کل مسلمین تامل ملکی من صغير و کبیرین و عقلین و مجنونین واجب از زکات بر هر مسلمان تامل ملک علکیتش کامل باشه سغیر باشه یا کبیر باشه یا عاقل باشه یا مجنون باشه احناف زکاتو بر کوچک و دیوانه فرض نمیدوند یعنی اگر یکی کوچک بود یا دیوانه بود مال داشت میگن از مالش زکات داده نمشي وليش تجي وليك تصرفها سي مال خاص دارن؟ ولا تجب على بعد عليه لم بر برده چون برده مالش مال سعیه دشه ولا مکاتب مکاتبان تامبول ملک نیست و ام ولد ام بلد، ولا منرق بعضو و کسی که قسمت یزون هنوز برده ولا کافر بر کافر زکات واجب نیست ولا مرتد بر شخصی که از دین برگشته اما میگه ولا ورتده اوماته بعد وجوب زکات یلی فلم تسقطن اگر مرتد شده باشه یا بمیره بعد از این که زکات بر او واجب بوده این زکات دیگه ازش ساقط نمیشه یعنی اون مالش زکاتشو ازش خارج میکنن بعدا هرچی میکنن دیگه میکنن بله پس اینا این شرایط رو داشته باشه شخص تا زکات برش مسلمان نتعمل ملك بارش زكاة مياد تيك تي كوچك باشه چه بزور تي آقل باشه چه ديوانه وعلى من غصب ماله فعاد إليه ان يزكيه لما مضى ميجي وبركسي كمالش غاسب شده مالش تشده عزش كرفتان بزور فعاد إليه بعدم مال امد بدسش ان يزكيه لما مضى میگه زکات شو بده بازون چه که رد شده زکات قبلیش هم بده و من علیه دینون یحیطو بماریه فعاله زکات میگه هرکس که برون دینی هست که مالش رو احاطه میکنه یعنی اون دین از مالش هم بیشتره یا چی به اندازه مالشه مالش رو احاطه کرده این هم میگه زکات بده ولی این اینجا دیگه واقعا احناف نظریات خیلی قوی تری دار خب کسی که مالش به اندازه دینشه چطور؟, چطور میتونه زکات؟ البته در پایین آورده که قول آخر شافعی اینه که برش زکات نیست این اصلا غنی نیست که تا ما بگیم این برش زکات میلن احناف میگن اول ما دینا رو نگاه میکنیم مثلا اگه 20 میلون دین داشت 20 میلون هم پول داشت خب خلاص دیگه این بیچاره چیه؟ اگر 20 میلیون مثلا دین داشت برگردنش اما 150 میلیون پول داشت این دیگه زکات میده چون باقی مانده پولش که ما دینو ازش کم کردیم به نساب میرسه دیگه البته اگه بحث پول بیاد دیگه دوگاش میکنیم که آه به نساب میرسه یا نمیرسه ولی در هر صورت ما دینو اینجوری حساب میزنیم از اون پولی که داره کمش میکنیم. اگر باقی مانده به نصاب رسید زکات داره نه رسید نداره و من کان له دین حال علی ملی زکاهو میگه اگر کسی دینی داشت دین حال یعنی دینی که وقت گرفتنش رسیده و بر شخص پولداری بود بر شخص توانمندی بود اون دین زکاهو زکاتش رو میده یعنی شافیه میگن این زکات واجبه که اونو فوراً بده اگرچه که اونو قبض نکرده زیرا میتونه اونو بگیره اما احناف و حنابله میگن زکاتش رو میده زمانی که تحویلش گرفت زمانی که چکارش کرد و كان مؤجلا أو على مؤخر لن يزكي اگر اون دین مؤجل بود آه؟ قرار مثلا حف محبد اونو بیاره یا بر یک شخص مؤسری بود تنگ شما زکات پول دادی 20 میلیون به یک شخصی که اون تنگ دسته تاوانا نه دارک بیت میگی اینجا دیگه زکات زکات این دینشو نمیده و من عجبت عليه از زکاتو فتولف قبل امکان ادائها سقطت عنه هر کسی که واجب شد برو زکات هر کسی که شد برو چی؟ زکات و مالش قبل امكانش از امکانش عدا تلف شد اینجا دیگه زکات از گردنش چی میشه؟ ساقت میشه